والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله. بحثی که یه درباره عبارات اصحاب رو راجع به مسئله نجوم داشتیم بررسی میکردیم یه مرداری که از کلمات که خوندیم از کلمات معلوم کراچیکی بود در چند فوائد در این عبارات که خوندیم. خود مرموم مجزیسی اونها رو ترخیص خرموندن و باز ما او ترخیص رو ترخیص کردیم که خوبی طولانیه و یه مقدار خارج از بحثه یه مقدار خود مرموم کراتی که مناغشهی با آقایان منجمی و با رمایی نجوم داره لیکن مناغشهی ایشان مناغشهی ای عذابی علمه که مثلا مسائلی که شما درباره اخلاق و اینها بفتی قدم شما با متاخلی فرق میکنن اصلا اونا باستان جای خوشی جای درجات دیوزاد ارسول سوابت که شما سوابزین چندان سوابت نیستن یه مقدار ایشان در اونجا بحث به اصلاع علمی با حضرات به اصطلاح منجمی داره حالا چون نخوندم اشاره اجمالی عرض می اگر آقایم خواستن نگاه بفرمن در همین کتاب سماول آدم جلد پنجه سفحه دویست و شهر و قال ابنو میسن میسن فی شرح ها در کلام منحا علیه السلام شرح مرحوم میسن بحرانی قدس الله نفسه بر نحج البلاقه به مناطبتی که از اصلا یاکم تعلیم علم النجوم هست کلیم این رواست نحج البلاقه جز رواست مطلقه که شدید بر علم نجوم ایشون یک مقدمه یک فوزی میگه اعلن ان الذي يلوه من سر نهي الحكمه النبويه عن تعلم النجوم امران بعد ایشون میگه دو داره که پیغمبر نهی فرنگه ابن میثم اول شرح اباظه نرا بلاغه میده بعد میگه احدهما اشتغال ومتعلميها و واعتماد كثير من الخرج السامعين له كام هافيمایرجون و هافونه علی شی ما یوسنه دو به الکواکل ولی اوقات هم روی در روایت داره یعنی نکته اینه که اونایی که اهل این علم هستن دنبال این بحثا میرن که چی میشه چی میشه باران میشه مثلا ازدواج ها منتهی به طلاق میشه نمیشه ولی اشخاص و مردم هم اینها به اینها رجوع میکنن به هی که به خدا رجوع میکنن بله و ال اشتغال بالفزا مردم برگرده بین کتاب نجوم چی نمیشتن و الا ملاحظه اشتغال عن الفزع الى الله تعالى به جای که رو به خدا بیارن که در روایت هم خوندیم سابقا بله و قد علمت ان ذلك و مطلوب الشاره چون مطلوب الشاره نیست قرزو الا دوام التفات الخلق الى الله پس یک نکتهش اینه از سانی ان الاحکام النجومیه اخبارات ان امور وهی تشغل اطلاع علو امور الغیبیه یه نوع قیب هستند و اکثر از هر من العوام او نسا و سبیان لا بین بینا و بین علم غیر اصلا خیلی میکنم پیغمبرم که مثل ای یا امیرون از اخبارات قیبی مثل اخبارات همین میده فکان تعلم و تلکل احکام و الهکنگه ها سببا لزلال کسیر من الخار اینشون و بعد توضیحی میدن برای این مطلب. بعد ایشان بعد از این مطلبشون که من خیلی اختصار کردم چند ست بیشتر نخوندم از دفت دفت دفت ایشان بعد و اما مطابقت و لسان از شریعت للعقل فی تکزی به الاحکام یعنی چطور عقل با شر مطابقه از این که این مطالبی که منجیه میگن درست نیست بعد ایشان تا ها بعد این بیان میشن این بیان از تقریبا میشه که از اختصاصات خود مرحوم میسن ورنانیست قدس الله نفسه در اونجا ایشون وارد میشن که اهل نظر اما متکلمون اما معتذله اما اشاره اما فلاسفه اون وقتی وارد بحث میشن ایشون حدود دو سفر اگه آیون خواستن به لحاظ بحث فلسفی وارد بحث میشن این دو سفر مخواستن که آیون دیگه شما خیلی خیلی طول بگیشن به لحاظ فلسفی و این که مثلا ما علل اربع داریم علت مادی و سوری و غایی و داریم اون وقت توضیح این علال اربع روی این قوائدگی در رجوع هست ایشون در اونجا فرمودن که این مطلب درست نیست تا, یک... تا اون سفتهی بله 264 تقریب هستن مطلب ایشان طبیل میشه مطلب مرحومه ابن،, ابن مئسن بحرم ازام ایشون از شرح مفصلی در اینجا دارن اگر آی خواستن این مثلت فلسفیش هم ایشون داره لکه مرحوم کراچیکی و مرحوم سید مرتضا علی از از از کراچیکی از این دو نفر قلبی مرحوم شیخ مفید و سید مرتضا بیشتر وارد اصطلاحات فرمی خودشون شده و اشتالاتی که از خودشون گیا این یک قسمت از کلام مردم کراجی بود یه قصه دیگهام شون وارد حکم شرعی میشن بعد پلیس به ما دیگه بعد ایشون میگه بله ایشون میگه لعنا انکرنا عليهم اضافه تهم تاثیرات شمس و قمر علینا علیهما به این حوادث من دون الله و قطعهم الا ما جز جزء نام تاثیر تاثیرات کواکب به غیر حجت عقلیه و لا به اضافه الى جميع افعال الخليقه ما دعواه له الا بالحياه و القدره فانكرنا عليه ما يدور الشمس والقمر و اشياء من الكواكب فاعلا لا افعالنا اینا بعد دیگه ایشون متعرضه بله حالا من محل کلامم کلاغ چون باز تشخیص بعد دیگه ایشون متعرض شده چون همه عباد ایشون یه حال اللذی ثبثت لنا علیه لا اد الله موافق للشریعه من بحث کلام من میینه که ایشون از اون مجموعه روایات این رو در میارن که اینها تاثیر ندارن و دائم دائم قائل بشیم که مثلا دارای اثری هست مثلا اثری که یک دیا در ما داره مثلا اشعه لیزر در ما اثر داره پس شو نور خورشید نور خورشید اثر دیگه داره مشکل نداریم وقتی به ایمان به خدا نداریم ولیسه هو به ملاعه من لمایت منجمون و انترنا علیه اعتماده هم فی الاحکام علا اصول متناقضه و مقدمات مفتعله و دعاون مزمونه بله فی امکان لها علم اصلون صحیح علا وجه یسوق و فی الاغل و یجود فلیسه من ما فی ایدیه ولی من جمله در برپرد هم قبول بکنیم مطالبی نیست که بتونیم به اصطلاح اونها رو بگیم منظر علمی درسته این خلاصه ای بود از کلام مردم کنزل خواهد کراچیکی که معاصر سید مرتضا البته به شدت سید مرتضا نیست اما ایشون هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ مجموعه استفاده از شریعت ربید کنیم یکی از بزرگان شیخ خلی متکریم به تعبیر ایشان محمود ابن علی هم، همسیز فی ذکر علم نجوم بله ایشون عبارت ایشونو رو در صفحه دیوی سناده هشت مرحوم صاحب بها رو و تقریبا همون تکرار مطالبه دیگه خیلی میخواد وارد بشیم انا لا نرده علیه همسی مایت علقا بالحساب فی تصیر نجوم و اتصال مباعث ریاضی مباعث حساب مباعث اتصال و ارتباط و دور و نزدیک و مسافاتی که این اینو نمیگیم، فعلا که ما لایه همونه، اصلا اینا وارد بحث فرق نمیشه، ولی ما می‌مانیم ما یقابلو به انکارن ورد. این بحثی علمیه. میگه ما این مدل کسر داره، ماهسوار داره تا ما ماسوار جلویش کنیم. شما نقلی از انکار کون نجوم اعلام موجبه یا تلوظال که به کل ما یا تلوظی هدف تلو موجب داره غیر مختاری. این نکته این ایشان جمیله، این نکته اشار قبضه شمشیر دو پهلوی. درویش هم به نرف هم به درد این طرف میخوره هم به درد اون طرف ایشون میگه اگر کسانی بگن که نجوم در ما تاثیر میزن و افعال ما از نجوم است که میگن است چه فرقی میکنه این در این جهش هیچ فرقی نمی کنه و لزوم منم عرض کردم اگر کسی نسبت یک حرکت حرکتی رو بدون بده به مجرد این نسبت دادن میگه خدا درش خل کرده و خدا راهش开 کرده که اینا مدبر عالم هستند تفریز اداره عالم این نظریه باطل هست اما موجب کفر نیست خب، چون یواش را جمع بکنیم بله این حرف ایشان خوبه یبطل و به کل ما یبطل و در ده رسول مجبره به اننا غیر و مختارین راست. بعد میگه پینقیل کیفتون کرونه در احکام که مثلا این طور میشه این طور میشه و قد علیم نا به کسور و خسور و رون از اهله. و پول هم را الان مایکوممون رو فل این اشکال چند مرزل تکرار شده ان اخبار من, من خصووب و, و خسوب و عااصل اهله لی صدل احکان من الحساب حساب رامت انسافر این دوتا هم دیگه حرف شده ان مهف و یبول و ضاکان کووف و خصووف کام بهن حواث کذا و کذا این حفل وقتی کووف میشه مثلا یکی از روزگان فوت میکنه بعدا میگه به عمل عبور ولت مستول علت یخ به اونن ها و انها اکثر حال آطر و این نمیه قرارقلی دندن ها به اتفاق میگه این علم نیست راست سربیشون این مطلب رو عباز سلمانزان بود نخوندیم ما اما که اعبش این برای افرادی که فالبینی هم میکنن واقع میشه. اصلا میاد تریم با این ورقه ها با فال قهوه فالبیینام میکنن و تا چنا بعضتا با فال قهوه اصلا تقریبا تخلقف نداشتن هرچی مطلب گلتن درست دارم و مثل دالکی اتفاقیل اصحاب الفال و زجر و لذین لای عربون علما نجوم بلکه برای پیل زنها پیدا میشه بلکه آجز ال... ال... لواتی سفائل به الهجار حالا زمان ایشون با سنگ بوده حالا زمان ما بیشتر از فال قهوه هست که خیجار میگذارن و لذین قدیوخ برای مسروع حتی میان بعضی دیوانها بعضی خبرها میدن که بهتره هست چون ارتباطشون با بدن کمه ارتباط خیلیشون بهتر به اصطلاح قدیوخ برون مسروع آدمی که بسیار سر گرفته و افتاده یا کسی رو من ناقصی لعقول دیوانه ها و صفحه ها خبر میدن و اون خبر واقع میشه حالا یه حاله تا اینجا این بحثو، این بحثو چون به لحاظ علمی و به لحاظ فلسفی چه به لحاظ علم نجوم و به لحاظ علم به اصطلاح به بله حاضر فلسفه متعرض شدید دیگه کلامش رو تمام بکنیم با عبارتی که مرحوم سید مرحوم شیخ تویسی نظر میخوام مرحوم شیخ بهایی شیخ بهایی هم از متلعین در این فنه یه عبارتی هم اینجا از شیخ بهایی نارد این عباز شیخ هم تقریبا به حد زیادی نسبتا خوبه که ما عباز شیخ بهایی رو بخوریم یواش واش وارد جنباله فرهی بشید. قال از شیخ البهایی این در صفحه 291 مرمون شیخ بهایی یک به اصطلاح یک مقداری حالا یا متأثرا به نظر به روایاتی که سیدم تا او کرده با او چند کرده یک چیزی ما به اصطلاح علم و دین و فقه جام شیخ بائی فرموده از ما يدعيه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلیه در سفلیه در ادعاشون کره زمین بوده حالا کره زمین در حواس در اصطلاح خودشون بل اجرام ال الویه که در فضا است ادعا م و ان تلك الاجرام علت المؤثره استقلال او انها شریکتون فی تحصیل تاثیر فهذا لا للمسل و علم النجوم المفتن على هذا كفر ولا اعاذ بالله يا ملحد اگر منکر خداشی یا مشک دو تا حساب و على حالا حمل ما ورد في الحديث انه تحذير علم النجوم اون روایات اصلا یه جمعی میکنه ما بین فلسفه و علم و دین با هم دیگه فقه و اون رواياتی که در باب علم النجوم اینه این ما یا آشان چون بنا سهی بگیم معلوم نیست که تمام روایت نظرشون به این باشه که ایشون فرمیدن یه مقدار نظر از روایات مثلا روایتی در زمان رسول الله شده اینا همه روایات رو به یک چوب گرفتن اصلا در زمان رسول الله این احکام نجومی که بعد از فلسفه یونانی از هند و یونان و اصلا ترجمه شده وجود نداشت در زمان رسول ها اون که موجود بود علا تقدیر اینکه که درست باشه فقط همین پیشویی ها بود که میشه یه اون چشم به چشمدی اشمه بود پیشویی میکردن این طور میشه می یا میامدن الهاق نسب میکردن و مثل کهنه کهنه یک الفاظ مرکبی داشتن پشت سره هم میخوندن مثلا میگفتن این هنسان بعضی از یک قیابای خاصی سه جازوگرها عباراتشون هم خیل مثلا می گفتن این زنگ می که شبهه بود مثلا نصیبی خارزش کرده اون مثلا می گفت بله این کار انجام بود گفت نه این کار انجام انجام این، اونی که در زمان رسول الله بود این کهانت و ارافه و ایافه و ایافه اینا چند تا علم بودن که علم مثلا صدق علم نمی کرد درست حوادث بود در بعضی از روایات ما هم تفسیر شده که اینها یوهون اله الشیاطین، نشیاطین و یوهون الی اولیاءه، اینها جهات شیطان دیناست. بله. و این قالو ان اختصالات تلکر اجرام و مائع و ذلها من الاوزا علامات علی علا بعض حوادث سال العالم من ما یوجده الله مؤثر نیستن علامت این این تفسیر علامات بیشتر بعد از آمدن فلسفه و جنگ یعنی بعد از آمدن نجوب و جمع بین نجوب و دین شد کما ان حرکات نبز و اختلافات طبع از دین حساب نه تمام شرایط هم کسانی که باله خدا بودند کما ان حرکات نبض و اختلافات اوزائیهی علاماتو نیخذل لبحث طبیب الان مایع و ذلول بدن من قرب السائهه اصلا در بهوین یک رشته هست که طبش اصلا تماما در نبضه از صورت ازا میشه تمام احوال مرز و اقصاب مرز و حالات بدن و تمام رو فقط از نفس خبردار میشه و به داره و کما یستدل و به و بعض احوال مثلا میگن چشمش به هم خود مثلا این عبسه گرفت مثلا در میزودی خبری خواهد نومن میگن یا چی اون حالاتی که گروش گرفت به اصلا چی میگن تو گروش حریم مثلا میگن مثلا هدیه برش میگن و کما یستدل و به خلاج بعض اعضا علا بعض احوال مصد مثلا یه اینطور این لا مانعمه و لا حراج فی اعتقاده بعد ایشون میگه و ما روی من صحت علم نجوم و جواز نقله محمولان بر برمانه که انما ایشان در قرم دهم ها سر کردن یه جور جرمش پنگسته رو به قول معروف مجموعه روایات که سیمتاوز اصلا کرده اوورده مجموعه روایات روی به او اون طرف اوورده که تعلقش حرام است اینها این مجموعه روی اینجوری ج اگر فائل به استقلال یا به شرکت با خدا بدونیم این کفر اون یک کار فرزا بود علامات بدیم کفر نیست یک کار فرزا بود بعد ایشون بله الا امورلتی یحکم بها المنجمون و الحوادث الاستقبالیه اصول و بعضا محفوظاتشون من اصحاب الورح سلام الله علیهم اینم خونده دیگه این مسئله ایشون هم روال سید تابوسی البته بعض از اون روایات که مثلا اهل بیت من عرب در کتاب کافی در روزه هم بود اما اینکه حالا واقعا من هیش یشعرون از اصحاب به گرفته باشن این بعیده اما ممکنه من هیش لا یشعرون بعد این الامور الی به بها المنجمون دقت میکنن بعضی از این روایاتی که سنتوس آورده بعضی بعضیاش مشعر اینکه ارمی میگفتن با علم نجوم حتی حوادث جزئی را میشه خبر داد این اگر هم در به اصطلاح وحی بوده اگر هم چون الان این روازش خیلی بچند نیستن اگر هم جزوه وحی بوده معلوم نیست که این احکامی که منجیم گفتن از اونجا باشه باشن این استضحال مرموشه بایی هم خیلی مشکله و بعض الاصولی از دعو نفی تجربه و بعضا ها مفتنه علا امور متشعبه لا تفیع القوت بشریه فلقه اغلب به ها این اشاره خودشم میپرمایم کمایوم علیه قول و صادق علیه السلام کسی رو هولای و قلی رو هولای این روایت رو خوندیم حرص کردیم این روایت در کتاب حدیثی ما در روزه کافی آمده و بعد مقدار زیادی شد سینتاوز توی فرش وهمون مورده فلزاله که وجه در اختلافی کلامه و تسر و غرفتر تسر و غرفتر الى بعض احکامه و من لحل جر علال اصول صحیح صحب کلامون و صدق از و یک اشکال کار اینه که حتی اون اصول صحیح برای بشر عادی با این اصول صحیح از حرکات نجوم استکشاف افعال جزئیه فوق العاده مشکل بلکه غیر صحیح اصلا اونی هم که در کلمات امام صادق آمده به ایشان علا تقدیر صحتش و علا تربید قبولش یکی معنای غیبیست اصلا ممکن مراد امام که اینشان را بعد اشاره می کنم. اصلا مراد امام این باشد که ما به خاطر وحن بالای نجومیم نه اینکه از راه نجوم حکم می کنیم حقیقت ارتباط به به حالا تعالی اقتضا میکنه که انسان که ای دوست شکر و یا هم که شکر زادن ما از راه نجوم حکم نمیکنیم از راه خالق نجوم حکم میکنیم یعنی معلوم نیست اون روایات که مرحوم شیخ باهایی در اونجا با اشاره میکنه این روایات ناظر باشه به مسئله نجوم اصطلاحی. اصلا اون روایاتی که امامتان اصول و صحیحه لایه روایاتی این نفیس که بایدوش کار بشه من اینه که مراد در از اونها مجازن ظاهرشی که از رای نجوم مراد واقعیشون از خالق نجومه نه از رای نجومه <تصفيق> یعنی اون مورده که در اونجا به اصطلاح سبب و اون قسمت میشه عبارت از مسئله به اصطلاح نکته دیگریه نه نکته از رای نجومه ایمه علیه مسئله اصول علم نجوم رو صحیح میده اما اون حکر روی میکنم و اینشالله عرض میزم که دیگه فرصد مید. حس می شاید تعبیری که ما در آی مبارکه این مبحث به مناسبت استنطار به قول خودشون به انوا ایشون در کتاب به اصطلاح بهار ببینید اند ادت شعور اند الله اصناعش شهر شهرم ببینید کتاب الله ممکنه امه علیه مسترام پس رو روایت امیرمون که لر امشت چه حوادثی اتفاق افتاد این من بایی این طور که این مراد اینه که این حوادث رو امیرمون از آن نجوم پرمیدن و میخواد بفرمانی که از آن نجوم میشه حوادث جزی رو خبردن حرف من اینه که این اخبارات علا تقدیر سهر چرا از علم نجوم نیست از فی کتاب الله، بوده خرکتونی؟ این نعدده پشتور من یک توضیح را جیبی را اینواره که عرض کنم اصناعش هر شهرم فی کتاب الله یوم خلق از سما واسل یعنی وقتی برای بشه چخصی مکتبی بیاد از این مرحله خبر بده یعنی از مرحله قلب سما و قبل که من اینشالله عرض می کنم خب این معنیش اینه که این قبل از نجومه بحث نجوم نیست اینه که بیشون میگه اگر اصول صدیه باشه معلوم نیست علم نجوم اصول صدیه شد این اختزارو بکنه توی یکی از اون رواد بود که کسی بر این مطلع نیست الا من من موالید حالا موالید خلف رو ما اینجور ولادت مثلا دیمین در چه ساعتی به دنیا آمده اون لحظه چی بوده لیکن ممکن است از موالید خرب یعنی ایجاد وجود از وقتی که این سیارات کره زمین مثلا کهکشان‌ها، ها اینا قیدار شدن یام خلق الله و سما واضره موالید یعنی بتواند برگرده به میلیاردها سال قرب اون ده قرب رو در حجت الودا اون اولا نسی رو برداشتن. وقتی وقتیام توضیحم بذارم بذارو عرض میکنم چون وقتی خود پیغمبر چون بر اثر نسی دیگه ذوالحجه که من برای حج خود ذوالحجه نبود میاد یعنی خود پیغمبر در سالی که هجرت فرمودن ذوالحجه که به عنوان حج می صداش مشکل در حقیقت شعبان بود. واقع شعبان بود چون بنا بود که ذوالحجه رو دائما در بهار قرار بدن به زای عجب و که در بهار بود تو تابستان نزدیک بود دیگه حجاج هم نبود مکه با اوضاعش به هم اقتصاد مکه اعتمادش بر آمدن حجاج بود با این تربیت و به هم. کاری کردن که دائما زلجهجی و ایام هشتی توی بهار باشند این نتیجه شد لذا سه سال چون هر سه سال یک بار سه سال هم زلجهجی سه سال اول هزار سه سال زلجهتی در ما بود. اونا به اسم حج می‌سوزم در اخر ما سه سال هم در ماه شلوار بود سه سال هم در ماه زللقده بود، چدی که از سالال که پیغمبرم هج انجام ند شما پیغمبر به از هجداد که هج نرسند در این ده سال, سال یا۱ سالی که در مدنه بود بعد از ه ج هج تشیر نبند که از ذرشان هم بود ز ح ذهکه تا اون سال دهم ده دیگه زل ذرهجه بود. در اون سال دهم ده در موقع کی نصیب را برداشتن، ن عبارتی دارند، الا این از زمان قد استدار که حیعتی یوم خلق از سماوات درد خود یوم خ... این عبارت یوم این نشون میده که از اگر خبری از نجوم و حرکت شمس و قمر اینها میدن بالاتر از این اصطلاح علوم صحیح و اصول صحیح یوم خلق از یوم خلق الله سماوات درد و انشاءالله علما اشاره اجمالی میکنن بعضی از منجمین دنیای اسلام به ابو معشر کندی که معروف بوده این بیا من محاسبه کردم از حبوط آدم تا زمان پیرمرد واقعا در اون 100 سال, سال در 9000 سال تا 9000 سال محاسبه کرد در حقیقت در کتاب جساس رازی در ذیل آیه در تفسیری که داره و ان شاء الله میکنیم که جساس مثلا مثلا ابو معشر کندی فرض کرده که رسول الله این 9000 سال رو به علم نبوت ایشون از دلایل نبوت گرفته که یکی از امارات نوع واضفه هم همینه که که از 9000 سال خبر داده خب اون هم توجه نکرده حضرت این یوم خلقه سماواتر از نه, نه سال که اون بود آدم باشه دقیق میکنی این که ایشون میگه که اگر من تفقه لحال جر علال اصول صحیحه صحه صحیح کلامو، این اصلا اصول نیست بالای اصوله وقت اصول و نجوم و حرکات نیست در خود آیه اگر توجه بشه؟ این اهدت شهور این دالله اصنا عشر شهر کتاب الله کتاب رو به خدا نسبت داده حتی لوح محو اثبات هم نید. به حرکات خرشید و این هم به نجوم هم نید اینشالله من توضیحش بعد از میکنم که چه نکته زریفی احتمالا در اونجا باشه ایشون میگه صح کلام و صدق احکام و لا محاله کما نتقبه هی کلام و صادق علیه السلام رواست المذکوره در خود اون کتابی که مطرح شده لاکن حالا را عزیز المناد لا یه رو الا نه این منحضر در نبوه نه لا یه فرابیه الا القلیم این اختلاف ما با مرموم شخ بحالی در فهم روایاته اون روایاتی که میگه ما فقط متلقیم نه از راه نجوم یعنی علم اینها رو با علم منجمین یکی بگیریم این یک کمی اصولش صحیح اون صحیح نیست نه این نیست اونی که ما می از روایات بعد ایشون به همین مناسبت کلامی هم در باب مبدعا معاد الهیات شفا نرمه شیخ رئیس ابن سینا در همین صحبه 23 این کلام هم شیخ باهایی نرمه میکنه ولی ابن سینا کلامون توی آدالباب فی فصل مبدعا معاد من الهیات شفا لو امکن انسانن من الناس ان یعرف الاحباد صدیف الارض و سما جمعه و تبایع ها لفهم کیفیت مایه در صفل مستقبل لیکن از در واقع این کافی نیست چون اونی که را قابل مستقبل یک قابل تغییره با امور اولا اصلا مقدماتش درست نیست ثانیه قابل تغییره و سالسا مسئله بدائنی یعنی اینا نقطه مشکل اساسی کار ما اینه که ما یک اده معتقدات دینی داریم که با این زیاده علمی که اینو گفتن نمیسازه. اینا مشکلشان در ادنیوج همین بود. وهادل منجم القائل بالاحکام منه او ظاهر اولا ببینید خود شیخو رئیس میگه با اینکه مقدماتش لیست مستندتان الا برهان این مقدمات برهانی نیست بل عسى ان از تجربه اول راعی و ربما ها بل قياسات شعریه هم که اصل واقعا کلماتی سج و قافیه او خطابیه بی اثباته ها فه این نما یا انما یا امر و علا دلائل جنس واحد من اسباب کائنات و هیه لطیف این احتمالا همون نقطهی باشه که در خلال بحث گذاشتن از کردیم این بحث که بر فرد هم ستارگان و بعدشون و قربشون و نونجون و سیارات و کواکب تاثیر داشته باشن و لکن علت منحسره باشن حوادثی که در خود کره زمین هست سرما گرماهایی که در زمین هست و از و از آب این تاثیر نداشت باشه این همیشون که درستیم. حالدللاائل جنس واحد من اسباب کاائنات رهیلتتی ف سما نمیان به اون نکاتی که در پلاشا این حالت در زمین هم هست توجه بکنن. حال al ان نه لای از احافظه به جمعی الاحوال التيی به سما ال ان نه اینشون میگه نهنفس لا یزمن اونی که در روایت نقطه فرد ما باشه شخره سیداز اونی که در روایت نه لا یزمن لا یوم که نوعان یزمن این فرق اینجا ها. ایشون میگه علا ادنهو لا یزمن زمانی نداره نمیتیم تقییم بسا نقطه پیدا کنیم که احاطه به جمعی احوالی که به سماهه اون اگر روایاتیه که مرحوم شیخ باویو اشاره این کلامو هم شیخ باوی آورده اون روایات رو شیخ باوی هم کبیه کلام ابن سینا از روایات همینده نه اون چیزی که ما از روایات می‌فهمیم این که انکار تقدیر نیست این که لااینه انکار نداره بر بشر عادی امکان بوغیش دیگه برای اون عاملش هست که واقع جاره برای بشر غیر مکتبه وحی غیر از ابیوابا و دیاب خاص الهی اصلا امکان نداره نه یعنی مراد ایشان یعنی لغا میگه ولو زمن لنا فیضالگ و فابه لن یمکن و هنیج به حیث و نقص علا وجود جمعی آفی کل برد اما خواهی میگه این نیست در واقع یعنی وقوع به این معنا برای بشر آدی استحاله وقوعی داره چون یک ویشه هایی داره که ممکن نیست ما اشت تو هم خلق از سماعات ولعن و خلق انفسه خود دقیق کنید ما اشد اگر چیزی هم میگن شهودی نیست رو مقدماته میگه مثلا این زمین ده میلیون سال اینطور بوده پیش از سال قبل تمام اینها رو مقدمات به اصطلاح زنی است و امکان آها من حيث فعلی بل و امکان آها من حيث فعلیاتم معلوم من اند نمیشه از روایات این نیست نه این که کمه نیست ثابت است با این دو سال. من معتقد در کد آی مبارکه این نه ادله شهور ادال الله اسناء شهر شهره ایشان که آی مبارکه بحثشها واقعا از نجومی جزء نیست. از می‌کنم بگویم مثال پرداخت. خدا آی مبارکه در حقیقت می‌خواد یک نقص رو بگه. حالا چون نقل جزیی نه نقصیه توضیح دم چون گفت ابادشان نزدیک تمامش. در بحث نجوم اصطلاحی کهیم در حقیقت ماه هدیه‌ی دارن با ماه اعتباری. سال حقیقی دارم با سال اعتبار سال حقیقی پیش اونها همون سال شمسیه یعنی زمین در اون حرکتی که دور خورشید داره یا مداری که خورشید دورده علال اختلاف تفسیر اگر در یک نقطهی بود نسبت مدار بعد دو مرتبه به همون نقطه در سید دیگه این این حالا میخواد اول بهار حساب بکنی اول تابسون حساب بکنی اول پاییز حساب بکنی ا معیار اینه ببینید این ترس که در جدید این زمین دور خشکی می‌چرخه شما یه نقطه درانداق اینجا این کلا روی چرخه از جوش شد باز برگشت و همینجا میشه یک سال اثر سال کینه سال حدی زمین نسبت به خشکی در این حالتی باشه برکه از اون حالت در آمد به همون مقدار میشه سال این الگوی امر حدی است اما اینکه شما ببینید سال رو به 12 ماه نیست که ما داریم که ماههاش هم سی و باشه شش از یا بارچاش بعدش هم بیست سیوز باشه یکیش بیستونه یا سیوز باشه این اعتباریه. ولی سالی که شما در دارم میبینید یکی سی و یکی بعدی سیوز، بعدی بیستونه. اما چه کارگری باید میگه؟ این قسمتیش اعتباریه. ممکن است شما سال رو به فنزام ماه مثلا تقسیم کنید. اینه اینه که سال هر همون سال شدسیه. ماه شدسی اعتباریه. حقیقی نیست شما تقسیم کردید این مرده که هناش علی محمد با بیا برداش اینتر سال کرده۱ ما به۱ در ما چون ۱ خیلی اعتقاد داشت برنگز که ایوان های ه در با خودش نو روی ۱ و۱ باها یا خیلی حساب قدن ه به خاطر به خوشون مهمم اولییه نو با خودش که کلمه واحد میشه با و هادان اعاف جمل میشه 19 19 ما هر ماهی هم نونزه روز تنیز آفه نونزه رو سه شسته رویز میشه تنیز هم کم میاد اون پنج هم گفته جده سال میست حالا این جریه راسته اصل این مطلع که باکه خوبیه اعتباراتی هم اما این جعریه سر در ماه در ماه حقیقی ماه قبریه سال قبریه اعتباریه درست در باب قمری به با اکسه ماه حقیقی چرا؟ چون شما ماه رو در یک حالت می بیدین اگر دفعه دوم در اون حالت می یک ماه می شید در حالت بعد، در حالت حلال می دیدین. اگر بعد برگشت و باز دوباره به همون حلال می این میشه ماه پمری ولی زا ارز کردم اون مسئله روحه حلال که آن بحث کردم یک مقدر از بحث علمی و تاریخی و واقعی خارج شدن مثلا مقامات مقام ببینید ما از کردیم در دنیای سابق دنیای فعلی هم مثلا چین دنیا فعلی هم دنیای سابق چون چین هم سال قمری دارد. دارد تنها کشور بزرگ غیر اسلامی کسانی که سال قمری ماه قمری هم داشتن دو جور بودن ماه قمری یک و اون سرش از کردیم سر محاسبات این بود کسانی که با زمین ارتباط داشتن با کشورزی ارتباط داشتن با شمس تک زین حیاتش نمی‌کنه کسانی که با زمین ارتباط نداشتن مثل عرب جایی عرب بدو این عربی سر او درش شیش وقت سال نه با زمین ارتباط داره نه زمین کشاورزی داره نه دنبال بارانه او فقط دنبال یک چیزیه که آب پیدا بکنه چند از اونجا آب بخوره و برگردن یه جایی به آب پیدا بکنه اونجا باشه در این جامعه ها به چی اعتماد می‌کردن به رؤیت الهی محاسباتش رو ماهر در اون حالتی تا ببینیم چه دگم‌ها چون دیگه اون نکته‌ای نداشت برای او که بیاد این حرکت ماه رو به لحاظ این که, که گردم میاد که گردم تموم میشه که گردم به که این حساب رو کسایی میکردن که با خورشید اثبات داشتون دقیق فرمونی؟ و این نقطه رو همینجه عرض کنن کلمه معونه هم که در روایات ما آمده حقش اینه که با سال شمتی حساب بشه چون همان که هنوز الا غیر از اجاثی، هنوزم که هنوز ذله طور طبیعی محصولات کشاورزی با حرکت خورشید در سال یک باره تنظیم معونه و تزینه زندگی هم در شابه رو همین حرکت خورشید بود. یعنی وقتی که گندم درمی‌داشتن از اون گندم برای معونه حساب میکردن سال قمری معیار معونه نبود، معیار معونه همون سال شمسی بود. درک کردید؟ اگر بعض دعادشون تو خیلی از داد سابقا همه چیز خیلی خود یا دکار یکمونه وقت درو گردم میدیم همون وقت مثلا سال شنطی بود که در حقیقت محیار معونه بود اینجا این نقطه خودت دقیقه کنیم پس ماه حقیقی همون ماه قمری دیم. اما سال قمری دیم. که دوازده ماه رو پرده هم قرار بدید. سال این سال می... این سال حساب نمیشه سال. این در حقیقت که اول اعتباری صرفه یعنی به لحاظ علم نجوم در ماه قری این ماه با ماه دیگه ماه به ماه احکامش عوض میشه نه سال به سال و رضا یک ماه قمری ممکن در بحال باشه تابستان باشه زنس. هیچ رفتی نداره به حواظت و اون مقدار پرسید مثلا ماه اگر طلوعش منشه جد رو هر وقت ماه هست او ماه قمری دنبال سال نیستی اگر فرصیم مثلا عادت خانوها ارتباط داره با حرکت ما فرصیم در اول ما که مثلا رابطه‌ای داره با مسئله آمدن مثلا دماغ معروفه خانوها این رابطش اول ماهه نه دوازده ماهی حساب بها رو تابستان کشیم لذا طبق قائده اگر ماه تأثیر داره فرصیم بدر ماه یک تأثیر داره حلال ماه یک تأثیر این تابه حلال و بدره اگر تأثیر هم نداره این چرقی نمی کنه یعنی اون نقطه ای که در ماه هست ماه به ماه باز حساب بشه خوب دقیقه بکنید احکام ماه قمری ماه به ماه اصلا سال به سال نیست به دوازده سال نیست چون اعتباریه ممکنه شما بگید سال قمری در ماه رسو شما چون اونی که الان نجوم می‌دونه، خیلی خوب دقت کنید علم نجوم می‌دونه هر ماه بر خودش حکم داره. مثلا اگر بنا شد با مثال ارج می‌کنم، نور شدید ما تأثیر در رنگ میوه داشته باشه، این دیگه فرق نمی‌کنه. یک دفعه در یک سال، مثلا ماه محرم، ماه محرم، نور ماه محرم تأثیر در یک سال یا ماه صفر میشه، یک سال دیگه چون اون تعمیزی که هست در بلاخره وقت معین ساله اون ماهی هم که نورش باش مصادفه ماهش عوض میشه محرم هست عوض میشه جا به جا میشه ما در ماه قمری اصلا تابع سال نیستیم تابع ماهی ها اصلا این اون ای که میخواستم بگم اشاره میکرد که داره پس بنابراین سال قمری سال نیست نسبت قمر احکامش ماه به ماه عوض میشه اگر تأثیر در جذرومت داره به خاطر نور ماهه کار نداره زبستون تابستون باهاره اصلا کار این کار نداره اگر تأثیر در فرصیم عادت خانومت که قالبن اینطوره مثلا یه خانم از پنجه ماه میبینه تا دوازدام ماه از اول ماه غالبا مرتبط میشه در نور ماه خوب دقت بکنی؟ پس در ماه زمرین سال وجود نداره من فکر میکنم آیه مبارکه نجوم این رو میگه پس ما سال قمری نداریم اگر سال قمری نداریم پس این دوازده ماه بقولیشون چی میشه که دوازده ما رو یک سال میگیریم من معتقدم که آیه مبارکی یک نکته خیلی ذریف همینه. آیه مبارکی نگه سال دوازده ماهه آیه مبارکی این ان شهور این ادزت شهور ایندالله اصناع شهران فی کتاب الله این سناخوی دوازده ماهه آهه یعنی ماه های قمری دست اینطوریه این طوریه دوازدهتا به دوازدهتاییش حکم دارن از همون اسمشون بیداری سات اینجا این مطلب رو آیا علم نجوم قبول میکنه خیر؟ خود قرآن هم توجه داره یعنی قرآن همه اولی که صاحب کار رو صاف کرده خرزان نیمه بگیر علم نجوم این قبول نداره خود قرآن مفرد انه ازده شعور اندالله اصلاح شهر شهر کتاب الله یعنی مغز بشری به این نمی رسه یوم خلق از سماوات وله احر خیلی عجیب این تبیر آیه این یک تکمین واقعی از اول خلقت آسمان و زمین این یک امر اعتباری نیست و چون فی کتاب الله اغول بشری هم به درک نمی کنه قرآن, نه، قرآن میاد امور واقعی رو بیان میکنه برای بشر بشه نکتهش اینه نکته قرآن این نکته اساسی کاره ولو بشر مثلا ایکی از آیاتی که در قرآن آمده که از این اصلا نسبت به خدا داده نه نسبت به رهن نگذر فی کتاب رهن فی کتاب الله یعنی اون مرحله که بشر عقل بشر احاطه بوجه امکان نداره چون دیگه هم حال من ان شدی دیگه وقت تموم شد من مختصر داره. ولی ولذا خوب دقت بکنید شما در ماهای قمری و نجوم هیئات علم میگه ماهای قمری اگر تاثیر دارن ماه به ماهه سال درش معنا نداره اعتباری صرفه 1 میشه سال قرار بدی 10 میشه سال قرار بدی 20 میشه اعتباری صرفه راست اعتباری صرفه ماه حقیقی ماه قمریه سال حقیقی سال شمسیه و لذا این دوتا حساب هم با هم مشکل دارن دیگه از کردم سالن چند بار از سلم تا اونجایی که ما خبر تنها گروهی که تفکید یعنی جمع کردن ما بین یک نوع تلفیقی کردن بین ماه قمری و سال شمسی یهوده نسبت به یهود داده شده که اینها دو سال رو ماه سال رو دوازده ماه میگیرن سال سوم سیزده ماه میگیرن ولذا محرم مثلا همیشه فرسون توی بحار واقع میشه که احتمالا مشروطین مکه هم نسیع از یهود گرفته باشه در این کتاب الاسار الباقی ارمون خالی عبوره ها شهر داده جذول و ماه های خر... استلاح... یهودی ها رو برده اینا جمع کردن هم سال حقیقی رو گرفتن هم ماه حقیقی رو گرفتن خب این نمیشه با دوازده نمیشه. میشه نتیجهش این شده که دو سال دوازده ماه سال سه بوم سیزده ماه که جمع بکنن بین ماه حقیقی که ماه قمری و بین سال حقیقی که سال شمسی من فکر کنم در این آیه مبارکه لطف آیه به اینه که اینه ادت شهور یعنی این دوازده ماه یک خصلتی دارن که دوازده دوازده باز حساب بکنی و بشر هم به این خصلت نمی این جزب غیب الهید. از هم یعنی داره به شما میگه اگر در منجبین آندم خیلی باطله قطعا ما با علم کنار هم نمیادیم و تبقه همین حکمه که بعضی از ماها نصد به رمزان داره حکم خاصی احتمال باید انتقه ما که در عوض اون که تأملات خاصه احتمالی که بنده دادم چون حالا کسی نیلین احتمال احتمالی که بنده دادم لیلات القدر خیلی رم الالف شهر هم مرادش اینه یعنی این سال قدر این مبنی که شما ماه رمضان تصور بکنید که دارای خلقت می باشه این مبنی که دوازده دار دارای خلقت بدید به ماه رمضان تصدی میشه یعنی شما اگر دوازده حساب نکردیم ماه رمضانی تصویر نمیشه ماه رمضان تکرار نشه دیلاتو قصر تکرار نمیشه تمام ماه مثل هم میشه هزار ماه مثلان میشه دیلاتو قصر خیلی فرق نمیشه هزار ماه هم که بگذره ماه به ماه و ماه به ماه و شهران قمری هیچ فرقی باهم نمیکنه هزار تا هم مثلان این اگر شما دوازده رو دارایی که فکن واحد گرفتین اون دقت بکن به حسی که این ماه توش تأثیری داشته باشن که عمده ماه ازانه؟ و این ماه رمزان یک شب معینی باشه که فیها ها یفره و کل امرن حکیم امرن من اندنا و دفعه این اگر شما این لیلت و قدره قبول نکنید مثل هزار ماه هم فرمه میکنه هزار ماه هم یکیه هزار ماه با یک ماه با سد ماه با ماه هیچ فرمه میکنه چرا؟ چون این شب قهر قرار دادن مبنی است بر اون اختلاف شهود که ما دوازده تا رو یک حکم می‌گیریم اما اگه دوازده تا هم رو حکم نگرفتین که منشی میگن هزار ماه مثل هر نمیدین لایله سوخرخرو من 1000 یعنی هیچ فرقی در ماه ها نمی‌کنه سر قرار دادن لیل و همینه سر اینکه در روایات داره که اصلا امر در آیات که امر من اندنا این آیات با هم ارتباط داره این اون است که بشر به درد اون موفق نمیشه تیه کتاب الله یوم خلق از سماوات ولن این از اول تکمیم بوده بشر هم به اون نمیرسه امکان نرسیدن به اون هم نداره یعنی اینکه از نقاطیست که از اول شریعت مقدسه داره برای شما قطع نشان می در این مقدار ممکن نیست بشر به این نتیجه برسه یعنی با زواقص علمی و ما اوتی علم علمه لاقلیلا اون مقداری که عقل بشری به ادراکات بشری قرارزاده شده نمیتونه مگر اینکه که از مکتب برد تعلقی بکنه این از ره دیگه راهی نداره با علم بشری وصول به این راهی نداره در یک آیه دیگه چند دو تا آیهات مثلا این رو به خدا نسبت داده و من آیاتی من خلقه دکن من آیاتی که مثلا خداوند این انعام و حیوانات رو خر کردی که از آیات الهی که هم از اونها به عنوان مرکوب استفاده می کنید و هم از اونها به عنوان معکول استفاده می کنید خیلی عجیبه این دو تا الان شما هر هرچی بیشتر بکنه ظاهره که مثلا ماشین بسید که مثلا ماشین درست بونید که هم مرکوب باشه هم معکول آدم باشه این رو در آیه مبارکه از اختصاصات الهی قرار داده که واقعا من خب چیز عجیبیه اما ما مثلا بشنگ هم پیش رفت کرده انواع مرکوبات روز کرده هواپیوه و غیره روزگاری درسته که این مرکوب که خب بازه گاره دعاویت و خودش باشه حرکات خواست رو تحمل بکنه این در این حال هم مرکول هم باشه مرکول. خب الانشان داردیگه میگرد اصلا مرکوب نیست مرکول هم هست نگه چطور الان مرکوب نیست مرکول هم هست این یک اختصاصات الهی در که الهی هست، یک احساسات الهی هم در تقدیرات الهی است که اون احساسات اینه هر دوازده 12 یک وقفی داره و پیغمبر اگر دقت بکنید فرمودن الا ان زمان قد استدا زمان گشته که یوم يوم خلق الله السماوات و الارض در اف جلدی درست الان زمان با همون لحظه ای که خداوند زمین آتمان را خلق کرد یعنی میلیاردها سال قبل نه نه سال قبلی که ابو معشای کندی حساب کرده طبق همون حساب واقعی الهی که بشر پشنه می الان دقیقه زده جه زده جه اینه ملیارد چون مرموم مجلسه می به نظر ما معنی آیی مبارکی اینه و الله.